اللهم اغفر لنا اجمعين وارحمنا در بحث در باری علم اجمالی بود و بحث اینجا رسید که اگر مختصر قایده بگیم علم اجمالی منجز نیست از نظر عقلی اشکار ندارد اصول در اجراءودی جاری بشه آیا از روایات و تعبد به اصول یعنی بگی من مانع حلی مانه یعنی که اجازه بفت آیا این مقرار که ثابت شد که حقیل مانه نمیگونه روایات کافی هم و که اصول جاری بشه مثلا اطلاق روایات و اصول اقتضاق کنه که در اطلاق علم اجمالی جاری بشه این برس اینجا بود از که مرمون شکل که نه نمیشه به خاطر اینکه که روایات مقیس به علم و به خلاف و اگه تا اون که اصول در تو رسم میزبانی جاری بشه همون اصطلاح معروف ایشون تناقض چندا ذیل داشته میونه مثلا اگه ما میدونیم که یکی از این دو عنا نجس است استعماله نجاست و استعمال حرام اثبات بر اباحه اگه بخند در حل سرجاری با علم ما به خلاف میسازه چون علم بود که یکی شنجسه ایش حرامه یعنی به عبارت دیگر اگر بخوایم به اطلاق کلوشه این لکه حلال همه صحبه کنیم مانعش اینی که بر کلوشه این لکه حلال حتی تعلن امنه حرام در این فتده و خب منجه علم داریم با داشتن علم دیگه جای نیست به نظام محروف شده این محرکی ایشان سر و عدم جریان و اصول در اصلاف علم اجمالی علم علم تناقض سبر و زید و ها از این دو تا اینا بود قطعا فاق بود یکی دیدیم که حکوم بشرتید که نجز شد قطعا بحث اینه که آیا میشه استثاثا به را در هر دو جایی بکنیم اگر فی نقصه به حکم عقل و غلال مشکل نداشته باشه در هر طرف دارم استثاثا را در اون روستاتا اشکال من باشه اینه که درست لازت هم بازه به یقینه به شکل داریم لیکن, لیکن اون رو آخر داریم، به یقینه و ما اشون یقین داریم به حسابه اینجا سر دیدیم جایی لاتن بازر یقینه رو شک نیست این تناقض سر و یا اگر دو تا اینا هست که حالت سابقه رو نمیتونیم یکیش قطعا بهشون با رسید و طواره در هر دو تیاری بکنیم اون هم همین مشکل اجرای اساس و طواره در هر دو به خاطر کلوشه یه ندیر اشکال من داده ما این میشه که یعنی اگر حتی تعلم انه و قدران خب منجه علم بودیم که پس برای این این اصارت اتحاره استصارت اتحاره اصارت اله این اصول جاری نیمیشن به خاطر تناقض صدرزه این خلاصه اشتال مرموم شیخ قدس الله نفسیه مرموم اصطاق بفرده عقلن نمیشه لذا به قول خودشون دیگه تیگه این جای بحث با شیخ ندارن چون شیخ اون مرموم شیخ محتلی است ولی که عقلن مانعی نداره ببینیم عدله شاملش نمیشه یا نمیشه بیشه میگه اصلا عقلن نمیشه خب بحث نداره که عدله شامل میشه یا نمیشه به این بحث رو ایشان دی... کسایی که مثل مثلتی دارن بحث علمی مطمئن کردن علاقه از تنظر اگر بدیم مانع مانعی نداره آیا اصلاقات شامل میشه یا شامل نمیشه دیروز عرب کردید چهار اشتار مرمون استاد در مرمون شیف کردن خوندیم از عبارتی ایشان که سوزیخاتی رو خودمون به عنوان اصل کرد از خارج سوزیخ دادید و بیان شد مصالبی دید من از مصالبی که شد در مثل اصطاقات الهل که ایشون, ایشون مثال داد اولا ربارت اصطاقات الهل که دوشه این رکعه از فرین در شبهات و حکومیه نمیاد نداریم ما ما چیزی بنامه اساط الهل در شباط بکمیه کلیه نداریم مسته سیگار کشیدن مثلا اون تربیری که داریم کلوش این رو که حلال هستا سرطان حرام رو بات مستردن و یکیم کلوش این حلال و حرام به عبدالله دن سنان یا عبدالله بن سلیمان رو بودم موهم که بازمونی چیه در بوده. و هر دو در شباط موضوعیه هستن رفتی به شباط بکمیه ندارم ما در اصول بیشتر ناظر به شباز حکمی هست. حالا به هر مال اگر قاعدی چیم تنجیز علم اجمالی مطلقن شده از در موضوعی مضافه این که این احتمال رو ما دیروز ارز کردیم که این حتی تلم این ربایت کلوشه هولک هرانت تلم تعبد نباشه ناظر باشه به مقام ترجز مثلا تعبدی تو کار نیزیم کلوشه حوالا که حلال همون نباشه تو زیمها الان تحبوت بله اگر کلوشه این حوالا که حلال در شبهات حکمی جایی بشه تحبوته اما در شبهات و موضوعی تحبوت نباشه باشه مقام تنجز این اشکال رو دیگذارد و نازر مقام تنجز بخاطر همین نکته نکته وقلائی است هر حکمی میخواد منجز بشه مکلف باید دو تا داشته بشه علم به کهرا علم به ص این دواره نظر به علم از است آره حتی تعالیم انهو یعنی اگر شما علم بسقره نشون خفن نیست امروه اقضایی صرفتی تعرض بله چون بحث ما در اصول اعمل اسواق الحل من متفقه در فقط تو نیست فرسی مثلا استثهاب روایت کنار استثهاب جوابشم اونه که امیتا ما هم در شورت حکمی جانه این دونیم یاری میدیم در شواهد حکمی مثل اساس حالا اساس و, حالا اساس و در اساس و ثاره کُلوش این لکه چه ناظر به اول ناظر به که قطعاً هست اگر به هم باشه باطل چون حکم ثاره حکم شرعی دیگه که پس این روایات اصالت تهاره اطلاع باید هم بر تهبود بشن یعنی شاره ما رو متعبود میکنه به تهارت ظاهری این جرد میکنه تهارت ظاهری چون این جعل و غلاله ازن تهارت به این معنی امر شرعیه امر است لذا اینجا رو نمیشه بگیم قاعد بشین به مثل مسئله تنجز اینجا رو قاعد میشین به تهبود دوست همون هست در اونجا هم قاعده میدونم اما شارعه میگه شما هر که که حرام شرعه رو پیدا نکردی، اون حکم و تو منجز نمیشه این هر حکمه حکم آسیه نجات، چیز حکمه خورمه حتی تعریف علنوه حرامون بینه. تا بدانی که حرام هر حرامی اصلا شما ده غیر از شریعت نورد در هر قانونی در هر قانونی محلق نمیشه همین که و تو حرام نه این ما متعرض شدیم آیه خوی اشکال کرد کفایه گفت شما مخواهی میگین این تحصیل در فعلیت داره این تحصیل در فعیلیت گفت گفتون از که من توضیح اعواض کفایه دادم حالا مراد جدیه اصاب کفایه چیه من اما اون قسم وقتی این تأثیر در تنجز داره در واقع نداره. حالا ما یه سری در این اصطلاح تنجز باشه. چون ما یه چون شو چرخش نمی نگیم مرحله جاه داریم به نظر ما مرحله فعل ابلاغ بعد مرحله تنجزه اصول و مکلف اصول مکلف این تنجز بعد از مرحله کسالت اطاعت رسید خیلی راحت تر شدندگی کردیم خیلی روشا و راحت روشن شد پس ما روایاتی که داریم یا تعبود مثل کلوشه این یا تنزیز مثل کلوشه این حالا این خلاصه نظر حالا شرح بقیه مطلب در اینجایی که مردم استاد دیگران مرموم شیف وارد شد مطلبی که استاد اشکال کردن که از کفایت نام کردن و ادهی دیگر اشکال کردن که درسته تو این روایت حتی تعلم آمده که بعضی از اصول توش ار نامده مثل ایشون دو ستا رواز بودن رفع مالای علمون اناسی سرعت مالای علمون اونا بفتید شاید اونا مثل همه روازی باید, باید چون رفعه مالای علمون آرفن این تا علم نداره برداشته شده آرفن میشه اونجا هم اونجا. اما خب ما اختصاص به اینها نداریم خب خیلی از عدلی که هست توش علم اخذ شده مثل قادر سوق ماستیم مثل قاضی فراخ قاعده تجاوز تو تجاوز علم احضا شده میگه من در سجده شکل در رکوع اون میکنم یه می بلا قدره که از فهم توی سالاتوی توش نداره حتی سهلا و طبعا هم اونجا دقیقه کن شما قاعده تجاوز رو کی جاره میکنی اگر علم نداروشین اگر علم بزاگر رو کنم جانه باطله. تا علم ندارین شما قاعده تجاوز جاره میکنیم اگر علم تجاوز این که باطله. پس در عدله و حصول این اشکالی که پایه خیلی هاش به علم نیستن چون مغییه به علم نیستن این اشکال تناقض صدرزه اونجا لازم لازه نمیدن اصلا این اشکال اول و مهم مزمو اصداد اصلا خدمتون که درسته این اصلا مورد نسیان که در موقعی دوشت از مورد نسیان اصلا جرد شده چی ها ملاقض دکر که نسیان نیسته نسیان مردش این که یاد شد بعد یاد روکو نخونده این که فقط هم باسده که موسمه شکل اصلا که یه جوابی اینجا معلوم آزیام حالا من همون رو توضیح بیشتر اصلا حق این از که این تناقض صد به تحبیر مرگون شکل افعاً هر حالا میخواد صد در روایت پاشتا نهاش بند کداران عرض کردن تمام احکام ظاهری اونجایی که ما قائل به تعبود باشیم. تمام احکام ظاهری به لحاظ بنای و اقلائی مغیاب عدم علمه اصلا حکم ظاهری معناش نمید اصلا تعبود معناش نمید چون اگر شما این پیدا که جای تعبود نیست اون کجای تعبود نیست طبیعت حکم ظاهری اینه و لذا عرض کردیم همیشه از لسانه روایت خیلی راحت میشه فهمید که آیا اینجا حکم ظاهریست یا حکم واقعی مثلا روایت داریم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نحیان اینجا حکم ظاهری که واقعی اینجا واقعی چرا؟ چون مغیر شده گرود نمی گرود نمی رو واقعی خود میگه هر چیزی مطلق است تا شارع نمی بکنه این تعبیر نه واقعی خود این تعبیر یعنی yani واقعا شارع شما رو برای شما مطلق هست چرا؟ چون مغیر شد حتی یرد فیه نحیان تا مغیر شد به یک امر واقعی را گفن اما اگر گفت کلوش این نبی پس تا تعلمان نهو قدار اوشه حبون ظاهری هر حکمی که مغیر به علم بخلاف شد مغیر شده چون علم که غیر از واقعه تا گفت تا نمیدانی یعنی اگه دانستی دیگه نتیزه دانستی نتیزه نتیزه نه دیگه یه ده نه این که تعلم به نه تا... حتی های... یرده یعنی حتی ینها انها, انها شاره یرده یعنی شاره درست تو اون جو نه نه نه نه نه نه نه تو بدانی حتی تعالی من بله شماست حتی تعالی من حتی یرده بیر پس این یک معیار این یک است که شما کیفیت افکام زادرین یا واقعی رو بفهمی. پس و این اختصاص به لسان دلیل نداره این یک حکم اغلایی تصلا میخواد در روایات وارد بشه پس اون تو روایات قاربی تجاوز نداره حتی ترم اون هم دوستیم اگر شاره آمد گفت بلا کرد تنیشی بلا, تن. تن. بلا قدرکت این مادان با اگر شاره گفت بلا قدرکت اگر شاره بفت و بی صلاته، یعنی تا مادام نمیدانی اگر دانستی که رو انجام ندازه خب برای قدر کردی نمیشه که لذا این مطلب که مقروم شیخ فرمودن این فقط در همین چند تا روایتی که مغیاب علمه وارد نمیشه این اصلا در کل موارد تعبد هم نیشه اصلا تعبد معناش همینه تعبد اگر آمد گفت که من برسه گفتم که این تاهره یعنی مادام دار تعلن خود تعلن که نفیل خونه جسد جایی تاهره بود گفت کلو ما مواقعی سلاته که در سهولت برد فهم زی که ما بود شما از نماز فارس شدی شک کردین خلال عمل و انجام دادی اون عمل جلوس بوده در نماز یا نبوده قاعده فراق جلد میشه خب توی چنان داره که این برسوری قاعده محلش محلش ش شما پیدا کردن رو کوتونه غلط انجام دادید، نمودمون باطل. درک یادتون؟ شما یقین پیدا کردن عمل و انجام ندادین، خلل انجام دادین، یه جای قاضی تجاوز نیست، جای قاضی طرف نیست. قاضی سوق مسلم، قاضی مثلا یده مسلم. یده مسلم حجه است، تو شرط حثا طعن. اما طبیعتا همینطوره. وقتی یکی سیفرستان مثل بنده اواق میشید یا لباس میشید شما حکم ملکیتون اما یقین دارین قرص کردن یقین دارین قرص کردن اما حکم ملکیت نمی کنید اطلا باشایی این اینطور نیست که هر رواید کشوش حتی تعلم آمد و حکم زالایی باشید این یک امر اغلاییست اصوله یک سیره اغلاییست که اگر جایی که عبد آمد قاعده یه قاعده, قاعده سوخ مسلم اگر یک امر و احقاقیه، فراقاضی تجاوز، راستی آره خود فردا خیلی از قواعد مذهب ما قیاقت به علم و درس از مسئله ایشون درست اینطوری هم گفته اشتباه وارد درست نذارید اما این در لب و واقع هست نمیخواد توی واقع باشه این در لب و واقع تمام جاهایی که تعبوزه قطعاً باید تغییر دهنده خلاف بشه به تعبد منظور این که اصلا وقتی بیه تعبود یعنی میخواد در تو برگیفه قرار بده. تو نمیدونی گوش مذکار نه تو از دست مسلمان گرسی مذکر مذکار از بازار مسلمان ها گرسی این گوش مذکر خواهی نخواهی چه مذکر مذکار هست تا تو نداری فهمیدی که میگه چند هستی نمیشه با فهمیدی شما بگی بازم مذکار هست بلا حکمیان همیتون حکمیان اگر حکم کرد هم می‌دونید اگر فرض این رفع امتی مالای اعلی بود تا شما نمی‌گید رفع حالا یک اشکال که شما قبول نکردید ما قبول نکردیم مالای عالم. اما اگر رفع مالای اعلی قبول کردید شما دوکره می‌شید اصل حل ما سیگار رو حرام نه یعنی. خب بگیم حلال شما تو حکم سیگار حلال تا چه تا وقتی که شده حرام اون از تمام موارد تعبود معیار به علم به خلااص تعبود معنا نداره شما با این باخلاف که تعبد معنا نداره دیگه مثلا مثلا اون ارکان واقعی است و ورضیه وظیفه من که به الفاظ درایه برگردم وظیفه من که به قاعده سوق مسلم برگردم مشترکه اون اگر رفتون واقعی باشی که تحصیل لازم حسن. لازم کسی ملتظر نشده اینا میگن ظاهریه که نه مؤاخذه که جواب دیگه است ایشون و دیگه آیا مثل برام نایم اینا تحصیل می که این رفتان اومتی است خطه اشیا پنش رفع واقعی است یکی این رفع ظاهری تمام رفع واقعی می زنید با مالای علمون مالای علمون رفع ظاهری می چون تحصیل لازم این که از قصاص نایید، چیزی نیست. خود ما مؤاخذه گرفتیم اصلا حکم نگرفتیم. اون بحث دیگه‌ست. که ایشون فقط مؤاخذه، این مبنای دیگری، اگر مؤاخذه گفتیم، راست به بعد، با برائت اندازه حدیث را وقتی به درد برعرض می‌خوره که مؤاضش این باشه، من ظاهرن از سهم حکم رو برداشتن، درست جدی. این در میتونه. البته کاموا. اگر هم بر فرض حکمی هست. من ظاهرن برداشتن خوب ده برو ولی ظاهر این بحث آی این که آیا این مفال از این حدیث در نظر نمیان اگر گفت ظاهرن از تو برداشتن مالای علمون که نمیدونم خب اگر فهمید این که این حرامی برداشتن من که پس این اشکال که پایه و مرموم استاد که اده از اصول مغیاب نیستن اده از اصول مغیاب علمن مثل کلوشه ای ای این اشکال خیلی نظرهی اصول مخواهد مغیی باش باشه در واقع مغیی در لبش مغیی تمام اصول مغیی اصلا تعبد بدون مغیی ها چه اصلا تعبد معناش هم اگر گفت من اینو والی قرار گفت قاضی قرار ولی دارم برانشون میبینه که حکم قاضی معتبر میگه یقین دشنشون اشتباه کرده میگه دیگه احضرت تعبد اونجا نگیره با یقینه به اشتباه قاضی این یک امر کلی اختصاص به اونجا نداره. خب ممکن است شما بپرسید خب چرا شعار فقط در چند تا روایت اومده؟ دقینه؟ اون چند تا آمده شاید نکته فلسفیش این بوده که شعار موازی اینا همه تعبده. چون از کم در در روایت ما مغایر به یک امر واقعیت این زابطه کلی در ذهن باشه. هر جا قاید یک امر واقعی است اون حکم واقعی است. هر جا واقعیت علم به خلاف اون کل شیء شع حتی حفا بیا نات این خ را باقیین کل شیء شع را دهیم امی خوریم کردتون عزم هم بگی با کل این کل شیء شع این نق من ح کردنن مردم وصدوق و هیچ جا هیچ جا نداریم وقتی هم صدوق از جایی گرفتهپ تو بعض روات که صدوق گفته ما هیچ جا بده تو کووب زیدیه پیدا من درست تو کتاب زیدی از کتاب ما هم نداردتن کلا حالا این ختمان صدوق از یک جایی گرفته ما چه این محط را الان نداریم کلوشیه نحیون نداریم بله یه روایت داریم سأل از امام حادیث و امام عسکری که از یک محلوی سآل فرموزن صلاح در قدمت چیه فرموزن مطلق لا بحث به مطلقون امام فرموزن لا بحث به مطلقون اشعاری بین روایت هست در بح اما این کل کلوشی این مطلق هست هلیفیه نهی الان ما در کتاب سلمی و شیعه این سلمی که اقا متعارف پیش ماست کلن نداریم این مطلق صدوق هم منحسرن و مرسلن بوده غزمی منحسرن حالا اگر چنین مطلق بود میشه حکم واقعی اگر مطلق این بود کل این نداریم حتی سلم میشه حکم پس این روایاتی که توش عین داره اون نقطه شید اون وقت بنابراین این کلوشه این نبید حساسه علم ولو تعبده خوب دقت کنید لکن سبک و سیاقش و زیر بناش اغلاییه جعل تهارت تعبده این مثل این که شما سینکشیه برمیکنید یکی لامب قرمز بزه این جی, جی لامب آفی بگید اصل سینکشی و رابطه اون واقعی خودشه اون لامپاش فهم میکنه اینجا هم همینطوره اون اصله یعنی حتی تعلم انم نزید خودش قاعده اقلاییه خودش تعبودی نیست قاعده اقلایی این هست که شارع میتونه مقند میتونه در موارد شد تعبود بکنه روست ظابقیش هم این هستی این تعبود مالم یه علمه این راست شارع میتونه مثلا شارع میگه شما در نماز اگر شک کردید اینو نکنم ولی مثلا در محلشام باشه اما روا داره که جواب و جو است اوکه لشکر کیشی این واقع جو است اوکه شکوکی لیس بشه. میتونم اشاره کنم این تصرفات شاره و... و تصار. تصار ها تشاره اما اصل مطلب و نزاع کلیه اصولی که ما داریم که حکم ظاهری جاریه. اون کاری که من تیروزا از کردم. از کردم از لیو اصول ما مختلفه. بعضی از اصول اصلا و قویایی مثل اساس تو روایات ما هم نیامده اونا که اصلا توش من داره جل و تربط من هم بعضیاش هم شاره هم به مقدار اغلا تسبب کرده اونم توی جل نداره بعضیاش اغلایی هم شاره اوسع یا از از اغلا تصرف کرده اون جل داره همون که از میشه یا اوسع میشه جل داره بازیاش اصلا اولایی نیستن شریعت سر به اونجا آمد اونجا جعل دن آذربایجان میذکری جای ندید رو اد کردم اونی که اولایی است میذکری انصاف دادن با مطب انصاف انتظار نیستم که این سال از خبر ندارن نشن اذربایجان میبینی انصاف دادن نه عدم نه عدم واقع اونجا که اولایی است و شاره به اولایی هستن استثواب مبنیمو تصور میکنه رو است شاره هم و اغلا تستهی کرده است خب. اونجا هم جهل مدام اونجا که اغلایی هم هست شاره اوسع مثل قاعده فرا. مثلا مرمون استاد میفرمون قاعده فراغ و اغلایی لیکن اغلا کجا رو قاعده فرا جارمه که انسان توجه در این عمل داشته باشه و استادم عقیدش اینه که جهل به همین یکی داره رضا داره ایشون دارمون مثلا تو اروه اگه در خط میگه تجریه قاعده فراغ میگه که محل التفاد محل این نکته یه بند میشه اما مشهور بین فوقها بقیه حصولیم و بندم از اونا که قاعده فراغ جاری میشه ولی التفاد نباشه. این التفاد نباشه در بوده التفاد <تص> پس اصل قاعده اغلایی جر اوسر شد از بسیدون مبانی آیا کنیم که جر اوسر نیم اگر جر اوسر نشد مثال روشن شد اگر جعل اوتع شد جواب تعبد اگر شاره به اندازه اوغله در کرد خب میشه اوغله دیگه وقتی هم کاری که اوغله شد و جایی هم که تعبد صرف مثل اساس و ثاره این اصلا اوغله نیست اساسی که به طارق شرعی نمی کردن چیزی پس شارع نه ما اصول داریم روشن شد در کجاها تعبد هست در کجاها تعبد نیست این معیارها رو اگر بخواهیم زابط ما سعی کنیم تمام این مساله رو به نحو زابطه مرصوص در روایات و لسان روا با ظاهرا نیست یعنی ابتذات به این, این تعریفی ما این تفسیریه که برای مجموعه روایات بود یک جایی قائلم مثلا در باب استصحاب با اینکه لاتن قدری یعنی در شواهد موضوعی است در فصوص معارضش مثلا که اون اثر اینجوری فوقایی هست فقهای ما مثلا لاتن قدری یعنی به شواهد حکمی هستند اگر به شواهد حکمی باشه خودت خودت یعنی اگر ما از لاسن قضا این دیش از اون نقدار رو عقل هایی فهمیدی میشه تعبید همون نقدار رو همیدید میاد. این یه میرا روشنی کن پس بنابراین روشنی تو که اگر جایی جعل باشه به هر نحنی که شما مخلی تصور کنید قاعدتا این طوره جل تعبید و جعل این باید در وقت شک باشه میخواد تو دستان بگش بیاد یا نیاد، اون مهم نیست تعبد قطعا در ظرف و ولذا این اشکالی که منحوم استاد پرمودن این اشکال وارد نیست که ما در برزراز اون قاید نداشت باشیم در واقعش موجود اون قاید نوارد <تصفح> دارم دارم. دارم دارم. روشن روشن. اونا تعبوز توش نازم اونا اگر تعبوز آمد اوسع شد خودش تسریح باید بکنه ولی خراف باقید از افتوزن مثلا میگه شما مثل آن داوری میدیدی من برگاهی مثلا شام مخواهیم بچه ها پوتفال داره که بعد این داوری اشتماع کرده نه داور گفتی باز نافذ باشه این بحث خاص این هم دیگه من دیدن بایگاهی میشته بچه بعد نشین میگیم که این مثلا اینجا دلار کنند چید رو گفت بعد میشیم میدهیم که این متخصی نگاه کرده آه دلار اشتباه کرد با علم به خلاف معرضالت ناپنید اون به خاطر مسلح سلوکی است چون میگن اگر در یه داور رو خود جد نداریم تزلزد بشه بازی به همه بخورد این همه مسلح سلوکی دیست ما البته اینی که در مسائل فقهی بیاد بگه اساسا در بحث تا حد قابل میاد این تصریح میخواد ولی قاضیتون نمیخواد یعنی خود ما هم اینطور نمیگیم ما میگیم داور یا قاضی خود فقها هم قضاوتش که حکم محاکم نافذ نگیر اگه ام به خلاف بشه لكن این ممکنه ما بگیم که علم ح... حکم حاکم حجت با علم به خلاف خب همین بحث توی روزه عرفه دارن میگه بعضی فقها میگن مسئله عرفی پس باشه یعنی اگر من یقین داشتم امروز نهم نیست یقین داشتم روز هشتمه اینکه رویت یقینا قطعا اشتباه کردم که ایشون بودن وقوف کرد وقوفش مستیه با اندخلاقش مستیه این تعبد خاصیه میشه چرا میگم تعبد رو میکنه چرا هر این میکنه اینجا از چرا با ابو جواد با طب خوده ظاهری بود قاعده خارج میشه میتونید تعارض بکنه و این روایت میتونه ابو جواد علی ازها ما زه الناس و فطر ما اثر الناس ایده از فقهای ما اینجوری لمای عراقی نظر که که حج مشرف میشه شد <تصفيق> اینا که با علم بخلاف به خلاف به ادعای حدیث کردن اعتراض راه دیگه‌ای هم داره من نمیخوام وارد بحث حجم. احتمال داره که ابن از تاکنم بیشترش هست که به همین حدیث الارض ها مازه هن ناس مطلقا ولو این بخلافش بودش یقینا ما جزنا امروز رو هم نیست دیگه این بالاتره ما ازالش میگن اگر وقوف کرد و سن یا حکم کردن حاصبشون حکم کرد و وقوف کرد عملش مرضی تکرار نمیخواد بکنه این نحوه تعبد این دلیل این تعبد ممکنه ببینید چه مشکل نداره این اینجور نیست که ادله تعبدی نمیگیره. امکان داره دلیل تعبدی رو هیچ مشکلی وجودی تعبد برای نظم جامعه اجازه میدهد شم... و بعدا اصولا این تعبدی یک ما اینجوری گفتیم اگر چنین تعبدی آمد اون تفسیر ما خیلی در تفسیر قانون مصری این تفسیر قانونی باید اثر بکنه بفتیم. این تعبدی بودن معنایی نیست که شما ذهن ما میگیم تعبد اما تفسیر حالونیش تغییر تبدله خوب دقت بکنه یعنی چی؟ یعنی اون واقع این بود وقوفه در روز نهم. وقتی میگه با علم به خلاف ایستادی مجدیه این معنیش اینه که یا روز نهم باشی یا مسلمان ها بریستن همین که مسلمان ها وقوف کردن میشه اون لذا اگر تعبد بیار من کنگم تعبد خودا رحم توضیح داد این در لبش تغییر حکم اون تعبذ اولای به هر بهر نکر که شما ایشال میکنید این ال اغه ما ذهناسی بی روشن شد یعنی یا روز نهم باشه شما بی این موضیه یا اگر روز نهم هم نبود حکم دیگه مصننات استفاده که موضیه ال اغه ما ذهنا اون دقت این ال اول زمان اصل اگه این معنا رو قائل بشید معناش تصرف در ادله اولیه است این تعبدش تغییر نه این که باشه لطفش در رو به تغییر یا روز نهان با گفت دره بکن یا روزی که مسلمان ها میستادید ولی ولیزاد من غیر از آلا خدا رواید چون قبر مسیحتتر مسلما در زمان پیغمبر در مکه بودن از به مدینه پشناه بودن که حج انجام میزدن تو مشکن حج انجام داده به از تو مکه بودی خب از مدینه به بیت اول و در مکه بود قطعاً با شواهد قطعی تاریخی تمام این حجی که پیغمبر انجام دادن تو روز نبود اصلا تو ماه شعبان بوده ربیول اول بوده در حج بوده اصلا تو حج نه نب... تو زلکی ن بوده اون ما که پیغمبر مشرکین که حجیجه زلکی در مقابل نسیم تو حج زلکی ن بوده وقتی که از این سیره اینجور در میاییم مهم در روز ععرفه یا روز نهم باشه یا مسلمون ها به اسم عربه ایستادن این تغییر بوده و لضا این یک دویجه خیلی حبی میخواد که همین که مسل مسلمان... روشن شد تغییرش همین که مسلمون ها ایستادن و روز نهم نبوطی مشکه دا قبلاخرتون ان اددم بهشال من رو. مشکل نندارهشونخوا بابد نمی سازه می ساده میش. عطوه آیم هاي يقول ليش اكيد هو اي تحفظات عنده واحده وراد. وراد. معا معا العرب والانبياء والمجندين والهلال لا كلهم ياخذهم لا كل مو شكين غير مشكين ما ما كانوا مشكين يعني الرسول ما يقسم على المشكين علم شخصی يعني ما يقدروا علم خلاص علم نمیشه ببینید تعوض باز تغییر بشه چون این جزء صفات نفسانی است صفات نفسانی که چنشون طریقی اتفاقا ده نمیشه موضوع حکم میشه این اینه من توضیح چند بار عرض کردم سفات نفسانی که موضوعیت داره مثل خوف میگه اگر شما حالت خوف بدین وظیفه الوجیش این ممکنه سفات نفسانی که خودشون جنبه جنبه موضوعیت داره مثل خوب اما صفات نفسانی که طریق سر مثل آیند واقع میده اینا عادتا موضوع نمیشن عادتا اینجوری مگه که فارسی میگه در واقع این مبانی مبانیه حالا برگردیم به بر پس این اشکال مرحوم استاد وارد نیست به نظر ما اون نکته اساسی این راهی نیست که غایت تسیانه نکته اساسی این است که دقت کل شیء این لکن نهی که شرح اصل متضاد آیا قدری و اصول عصاای علم اجمالی دینه کل نیه یعنی چی؟ این سؤال اول این شیء یعنی چی؟ و اون تعلق یعنی چی؟ این دو سؤال رو شنیدی؟ بحث اول در شیء بگم شیء در اینجا یعنی هر چیزی چون شیعه گوگل آن مصادره شخصه هر چیزی که در خارج اینیت داره. مرا در شیء می‌بینی؟ او مثلا این عینت که مرکزش شیعه، و که این تشابه است لیه، که این عادل ناظر است به چواده موضوعیه. در طبق این تصور خوب که این قائل نخاب بگه، آنابینه اش... انتظاری شیعی نیست. هر چیزی که آمده مورد بکنی، تی در دوالت، ببینید هر چیزی اون چیز چیه بزید. اون چیز چیه هر شاید. اون هر چیزی با چون برگردید اون چیز خوبه بکنید اگر کسی آمد گفت آقا شی یعنی اون چیزی که در خارج وجود داره با عنوانه ملحوظ میشه شی یعنی این با عنوانه ملحوظ میشه اگر ش شه با انتظاری رو میگیره این ممنونی درد درده در قبلی که شهی جهر سال هتیم هسته درده داره شید باید شید جهر سال هتیم هسته به شه یکی چی سوال شهی گفته هلاک این شهی انابین انتظاری به گفته اونی که به شیل گفته بیشه اونی که محدوده شخصه اونوان داره رفت کتاب. این فضل زف این زفت این اما این همشی اما بس عنوان ازتزاقی این نیست این کلمه کلوشه ندیم چرا من بست بستر کنمم چون ما در این اجمالی اگر پرچه نگاه این ادن رو نبیر. این نمودار مالی با عنوان اعده و ماست. یعنی اینه که یا دارید چه چیزی رو اون دین؟ یعنی اینا این بحثا که نیست ضعف صدق تجربی. کامشو. اون اینجای من همین بحثی چند ما خارج شما تو خارج چیزی نام احماما ندارید اونی که خارج وجود داره منشه انتظاره یه نینک وجود داره به این و سوط اینی که در این اینو مصور جاییی در ساخر این نجمانی در حقیقت تنگوشون اینه شهر یعنی اون چیزی که متوشخص اون چیزی که بوجوده اون چیزی که آلمان داره اگر کن خواب پیدا رو باید باید متوشخص باشه همون دارد شما هر تا شما همون بهشی داریم ایسره نه ایسره احد و به خطر احد و میگه ایسره احد و این کدوشکن به خطر این این ممکن است که این آقا نظر این باشه تا اون چه نباشه این تندید میگه اون یعنی چی؟ من یه مثالا میذارم که تشریح میشه باشم ما الان ایشون در بحث واضوئی ندارم. مرونایی من دارم ما ایشون متعرض میشه آیا وقتی متعرض شدن که این بحث تندید علم الهی در چیه که متعلّب باشه اما به لحاظ مکتب علم الهی موجع نیست این بنا به واسطه دو دفر یه لباس مشترک دارن در نباز مشترک مشتره یک منی نه این حکم به جنوان خودشون رو نبون خب هاییی علم اجمالیت کرده چرا؟ این علم اجمالی با لعدده یعنی اگر علم در اطلاق مکلف بود منزیز نیست، در اطلاق متعلق منزیز متعلق منزیز بگر بود. چون من تکیه خودم دارم ببینید اون نوزیش اون جامه به نیامد اگر از خودش اما اجمال یکی باشه مهم با تعدد مکلب مرکز نیست منجز باشه شد چی میخواد بگن؟ میگرد اگر اون متعلق هم دو تاکنه اونجا هم منجز مثل مکلب بوده. اون نصب اون سر بزش. اگر مکلپ بسا شد علم اجمالی نیست متعلق بسا پس بس در حقیقت مثل مرموم مجزمی به علم منجز نیست متعلق رو مثل مکلف گرفته متعلق مثل منجزم مثل مکلف. یعنی چی موقع بگی ظاهرش خودش نبیه یعنی به عنوانه پس اگرش واسه ها ما ها شیه نیست اول در حقیقت اینه که آیا چون اگه ما الان اینو که دلیل اعده این ما کافی است تا اینکه یه مسئله میگه از نظر الله علیه